بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازه نهایت باره برای مردم حسابشان نزدیک شد ولی ایشان در غفلتند و از تسلیم شدن به حق روگردان هر یادواری تازهی که به ایشان از جانب پروردگارشان می آید آن را می شنوند ولی به بازی می گیرند در حالی که دلهایشان به امور بیهوده گرفتار شده است و ستمگاران به با پنهانی باید دیگر بر با راز و نیاز پرداخته میگویند، آیا این پیامبر بشر مثل شما نیست؟ آیا دیده و دانسته فریب سحر او را میخورید؟ گفت پروردگار من هر سخنی را که در آسمان و زمین گفته شود میداند و او شنوا و داناست؟ بلکه می گویند آنچرا محمد آورده است خوابهای شوریده است و بلکه آن را افتراک کرده بلکه او شایر است و اگر چنین نیست پس برای ما معجزه بیاورد به همان گونهی که پیشینیان با آن فرستاده شده است. مردم هر سرزمین را پیش از ایشان که هلاک ساختیم ایمان نیاوردن آیا اینها ایمان نیاورند؟ و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی می کردیم در این صورت از مردانی با خبر بپرسید اگر نمیدانید. و ما ایشان را جسدهایی که تا نمیخورند نمی خورند نیافریدیم و جودان نبودند و سپس وعدهی را که به ایشان داده بودیم بجا آوردیم پس آنها را با هر کسی دیگر که خواستیم نجات دادیم و اصراف کنندگان را حلاق ساختیم بیگمان به شما کتابی فرو فرستادیم که در آن عزت شماست آیا نمی چه سرزمین را که مردم آن ستمگار بودند در هم شکستید و بعد از ایشان گروه دیگر را فریدیم ولی چون عذاب ما را احساس کردند در دم از آن گریختند نگریزید به همان جای آسوده حالی که داشتید و به خانه‌های خیش برگردید تا باشد که سوال کرده شوید گفتند ای وای به حال ما واقعا که ما ستمگار بودیم و همیشه این دعوایشان بود تا اینکه آنها را درو یعنی ریشه کردیم و خاموش ساختیم و ما آسمان و زمین را و آنچه را در میان آنها است برای بازی نیافریدیم اگر می خواستیم که بازیچه بگیریم، بگمان بازیچه مناسب به شعن خیش بر اگر چنین می کردیم؟ بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم، حق باطل را نابود می سازد، و به این ترتیب باطل تباه شده نیست، ولی وای با شما از این توصیف نادرستی که می کنید، و از آن او هستند همه کسانی که در آسمان ها و زمینان. و آنانی که نزد او هستند از پرستش او سرکشی نمی کنند و نه هم خسته می شون. شب و روز تسبیح می گویند و هرگز سستی نمی ورزند یا آیا ایشان معبودانی گرفتند که می توانند از زمین موجودات را زنده و پراغنده کنند؟ اگر در این زمین و آسمانها معبودان جز خداوند یک تا می بودند، بگو ما نظام زمین و نظام آسمان هر دو به هم می خورد. پس منظه است خدای پروردگار عرش از آنچه او را به آن وصف می کند او از آنچه می کند پرسیدن نمی شود ولی ایشان بازخواست می شود. آیا جز او معبودان دیگری برگزیدند؟ بگو دلیل خیش را بیاوری. این از پیام کسانی که با من هستند و پیام آنانی که پیش از من بودند اما اکثر ایشان سخن حق را نمی دانند پس ایشان به این دلیل از آن گریزانند هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحیه کردیم که نیست معبودی به جز من پس مرا پرستش کرد. و گفتند خدای رحمان برای خیش فرزندی گرفته است او از این نسبت ها منازه است، بلکه اینها که با خدایی نسبت داده می شوند بندگان صاحب مکرمتی هستند و هرگز پیش از دستور او سخن نمی گویند و تنها به حکم او عمل می کنند خداوند کارهای گذشته و آینده ایشان را می داند و جز برای کسی که خدا از او راضی باشد شفاعت نمی کند و از ترس او بیمناکند. هر که از بگوید من جز خدا معبودم پس او را به دوزخ جزا می دهیم و ستمگاران را چنین جزا می دهیم. آیا کافران ندیدند که آسمان و زمین به هم پیوست بودند و ما آنها را از یک دیگر جدا کردیم و از آب هر چیزی زنده را ساختیم آیا ایمان نمی آورند؟ و برزمین کوه ها را برقرار گردانیدیم تا ایشان را حرکت ندهد و در آن والی ها و راههایی های قرار دادیم تا باشد که ایشان رهیاب شوند و به جایی که می خواهند برسند و آسمان را سقف محفوظ ساختیم اما ایشان از نشانه های آن رو گردانند. و اوست که شب و روز و آفتاب و ماه را آفری که هر کدام در مدار شنا می کنند برای هیچ بشری پیش از تو زندگی جودان ندادیم پس اگر تو بیمیری آیا آنها جودان زندگی می کنند؟ هر کس چشنده طعم مرگ است و ما شما را با آزمونهای خیر و شر مبتلا می سازیم و به سوی ما بازگردانی می شوید چون کافران تو را می بینند تو جز به استهزا نمی گیرند و می گویند آیا این از همان کسی که درباره خدایان شما حرف می زند و ایشان از ذکر خداوند رحمان این کار می ورزند آره انسان از شتاب زدگی آفریده شده است به زودی به شما نشانه های خود را نشان می دهید. پس شتاب ما ورزید می گویند چی وقت این وعده به جا می شود اگر راست می گویید اگر کافران آن وقت را می که چون عذاب خدایی بیاید آتش را از روی خود و از پشت خیش دفع کرده نمی و ایشان کمکی نمی شود این در جستجوی عذاب خدا نمی آری آری این عذاب ناگهانی به سر وقتشان می رسد و ایشان را مبهوت می که نه آن را رد کرده می و نه به آنها مهلتی داده می شود. و بگو به پیانبران پیش از تو نیز استهزا شده است پس به همان عذابی که آن را استهزا می کردن گرفتار شدند بگو شما را کی شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگهبانی می کند ولی ایشان از یاد پروردگار خیش رو گرداند. آیا ایشان جز از ما معبودانی دارند که ایشان را دفاع کنند ایشان با خود کمک کردن نمی توانند و نه از جانب ما حمایت می شود بلکه این ما بودیم که ایشان را و پدران ایشان را از وسایل زندگی بهراندوز گردانیدیم تا اینکه که عمرشان دراز شد آیا نمی بینند که ما زمین را به گونه تصرف کنیم که به تدریج از اطراف آن کاهیم؟ پس آیا ایشان غالبند یا ما بگو من شما را به وسیله وحی بیم میدهم ولی کران آواز را نمی شنوند چون بیم داده شوند و اگر بودی سوزانی از عذاب پرودگارت به ایشان برسد یقینا می گویند ای وای بر ما واقعا ستمگار بودیم فرازوی عدالت را در روز تیامت در میان می بزاریم. پس به هیچ کس ظلمی نمی شود و اگر به وزن خردل هم عملی باشد آن را به میدان محاسبه میآورید و ما به حیث حساب کنیم دباسنده ایم بدون شک ما به موسی و هارون فرقان یعنی جدا کننده حق را از باطل و نور و مایه پند پرهیزگاران را دادیم آنهایی که از پروردگارشان در غیب یعنی نهان می و نیز ایشان از قیامت تست دارند و این قرآن پیام است مبارک که آن را نازل کردیم پس آیا از آن انکار می کنید؟ و بدون شک ما به ابراهیم از پیش وسیله رشد او را داده بودیم و از احوال او خبر داشتیم انگامی که با پدرش و قومش گفت این تمثالها چیست که به خدمت آن کمر بستهید گفتند پدران خویش را دیدیم که آنها را می پرستند گفت شما و پدران شما یکینا در گمراهی آشکارا بودید گفتند آیا تو به ما چیزی را که حق است آوردی یا از جمله شوخی کنندگان هستی؟ گفت بلکه پروردگار شما همان و پروردگار آسمان ها و زمین است آنکه آنها را از هیچ آفری و من از گواهان این حقیقت می باشم و به خدا سوگن که در مورد بطهای شما چون از ایشان روی برگشتان دید و رفتید چاره می اندشم سرانجام همه آنها را قطق تکر جز بت کلان آنها را تا به آن را جو کنند و از آن چگونگی موضوع را بپرسند گفتند کسی که این کار را در حق معبودان ما کرده گمان از جمله ستمکاران است اده از ایشان گفتند جوانی را شنیدیم که در واب بوتها سخنان زشتی می گفت او را ابراهیم می گفتند گفتند او را با حضور مردم بیاورید تا باشد که ایشان شاهد باشد گفتند ای ابراهیم آیا این کار را به حق بودهای ما تو انجام دادی؟ گفت بلکه این کار را کلانشان کرده است از ایشان بپرسید اگر سخن می چون به عقل و وجدان خود رجوع جو کردند با خود گفتند واقعا شما ستمگارید گارید سپس سرهای خیش را پایان انداخته به ابراهیم گفتند یقینا می دانی که اینها سخن نمی گویند ابراهیم گفت آیا شما جز خدا چیزهای را می پرستید که با شما نه سودی رسانده می توانند و نه هم زیانی؟ اوف بر شما و بر آنچه با جز خداونده بر حق می پرستید آیا عقل ندارید گفتند او را بسوزانید و معبودان خیش را سرف را سازید اگر کاری می کنید گفتم ای آتش برای ابراهیم سرد و مایه سلامتی شد خواستند به او دسیسه چینند اما ما ایشان را زیانکارترین مردم گردانیدیم و ما نجات ابراهیم و لوت را به سوی سرزمینی فراهم ساختیم که در آن برای جهانیان برکت نهادیم و ما به او اسحاق را دادیم و هم یعقوب را بر آن علاوه ساختیم و هر یک از ایشان را نیکوکار گردانیدیم و ایشان را پیشوایان گردانیدیم که مطابق به امر ما مردم را رهنمایی می کردند و به ایشان کارهای نیکو ادای نماز به تمام و کمال و دادن زکات را وحی کردیم یعنی فرمان دادیم و اینها تنها ما را پرستش می کردند و بلود نیز حکمت و علم دادیم و او را از سرزمینی که مردم آن به کارهای پلید گرایده بودند نجات دادیم بیگمان ایشان مردم بد و فاسق و ما لوت را به آغوش مرحمت خیش جا دادیم واقعا او از نیکوکاران بود و نوح را یاد آور که پیش از آنها به پرویدگار خیش نیایش کرد پس دعای او را اجابت کردیم و او و خانواده اش را از آن مصیبت بزرگ نجات دادیم و او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند کمک کردیم وواقعا ایشان گروه بدی بودند پس همه ایشان را غرق کردیم و داود و سلیمان را به انگامی که که دربارۀ کشزاری که شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده بودند و مزرعه را پایمال کرده بودند داوری می نمودند و ما شاهد داوری ایشان بودیم این داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از ایشان حکمت و دانش دادیم و کوها را طور سربه فرمان قرار دادیم که در تسبیح خداوند داود را همراهی می نمودند و مرغان نیست و این کارها را کردیم و به او صنعت زریح را برای شما آموختیم تا شما را در جنگ های شما حفاظت کند پس آیا شما گذار هستید و برای سلیمان تند باد را مسخر گردانیدیم که به فرمان او به سوی زمینی که در آن برکت نهاده میوزید و ما به هر چیز آگاهیم و از شیاطین گروهی را متی ساختیم که برای او غواسی و نیز کارهای دیگری غیر از این می و ما مراقب حالشان بودیم و ایوب را به بیادار هنگامی که به پروردگارش نیایش کرد که واقعا بیچارگی به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی پس دعای او را اجابت کردیم و بیشارگیش را برطرف ساختیم و خانواده او را به با او باز دادیم و بر ایشان همانند تعدادشان را افزون گردانیدیم از روی مرحمتی از جانب ما بر ایشان بود و پنده برای پرستش کنندگان و اسماعیل ادریس و زلکیفل را بیا همه ایشان از شکیبایان بودن ما ایشان را در آغوش مرحمت خیش جای دادیم و حقا که ایشان از نیکوکاران بودند و از را را بیادار چون از میان قومش خشناک رفت و گمان می کرد که ما بر او سخت نمی گیریم او در این حال های تو در تو چنین نیایش کرد که نیست معبودی جز تو پاکی تو ای خدا بیگمان من از جبله ستمگاران بودم در این حال دعای او را قبول کردیم و او را از آن تنگنا نجات دادیم و این چنین مؤمنان را نجات میدی و ذکریه را بیادار هنگامی که به پروردگارش چنین نیایش کرد پروردگارا مرا تنها مگزا و تو بهترین وارثانی در این حال دعای او را قبول کردیم و با او یحیار را دادیم و همسرش را برای او برومن ساختیم یعنی از نازایی نجات دادیم بیگمان اینها مردمی بودند که در امور خیر پیش دستی می کردن و به ما به امید برخورداری از مرحمت ما و بیم از عذاب ما نیایش می کردن و برای ما فروتن بودند و زن را با یاد آور که پاکدامنی خیش را حفظ کرد و ما به او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان معجزهای گردانیدیم اینها همگی امت شمایند امت واحد و من پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید بعد از ایشان بازماندگانشان شان در امور خیش تفقه میان آوردند ولی در آخر کار باز همه به سوی ما باز می از این رو کسی که نیکویی کند و مؤمن هم باشد به مسایه او ناسفاسی نمی شود و بیگمان آن را برای او می نویسیم بر سرزمینهایی که آنها را حلاک گردانیدیم یعنی بازگشتشان را به حق حرام قرار دادیم و از این رو ایشان به حق باز نمی گردن. تا چون صده یا جوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه حجوم آورند و وعده حق نزدیک می شود پس در آن وقت است که چشمان کافران باز میماند ماند و خود می گویند ای وای بر ما از این روز رفلت داشتیم بلکه ما ستمگار بودیم بیگمان شما ای کفار و چیزهایی را که با جز خدا می پرستید دوزخ هستید همه شما به آن وارد شدنی هستید اگر اینها خدا می بودند هرگز به دوزخ وارد نمی شدند در حالی که همه در آن برای همیشه به سر برند در آنجا برای اینها ناله های دردناکی است ایشان در آنجا چیزی دیگر را نمی شنوند بگمان برای آنانی که از جانب ما از پیش به آنها وعده نیکوی داده شده ایشان از دوزخ دور ساخته شده اند. صدای آتش آن را نمی شنوند و آنچه مایل کنند و ایشان مویسر است و به این حالت زندگی جاودانه را بسر می برند دهشت بزرگ ایشان را غمگین نمی گرداند و فرشتگان ایشان را استقبال کرده به ایشان می این همان روز است که با شما وعده شده بود روزی که آسمانه را مانند پیچیدنی تو کتاب در هم پیچیم به همان گونه ای که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم این وعده است بر ما و چنین می کنی. بیگمان در زبور و بعد از ذکر نوشتیم حتی که زمین را بندگان نیکی من وارث می شوند بیگمان در این پیامی است برای مردمی که خدا را پرستش می کند و تو را مرحمتی برای جهانیان نفرستادیم. بیگو بگو بیگمان به من وحی شده است که خدای شما خدای یکتاست پس آیا شما به حق تسلیم می شوید؟ اگر روبرتافتند پس بگو من همه شما را یکسان از عذاب الهی خبر دادم اما نمیدانم دانم آنچه به آن وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور بگمان او سخنی آشکارا را می داند و آنچه را پنهان می دارید نیز می داند. من نمیدانم شاید این تاخیر عذاب برای شما آزمایشی و منفعتی باشد تا مدت معین. پیامبر گفت بار خدایا در درمیان ما به حق فیصله کن و پرویدگار ما خداوندی رحمان است و از وای در برابری این اوصافی که شما با و نسبت میدی یاری خواسته می شود. برابری این اوصافی که شما با وی نسبت میدی هد یاری خواسته می شود. برابری این اوصافی که شما با وای نسبت میدی یاری خواسته می شود. برابری